خب بسم الله الرحمن الرحیم کتاب مقدمه آجرومیه نویسندش ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن داود سناحیجی معروف به آجروم از این جهت است که کتاب هم مشهور به چه است؟ آجرومیه الله رحمتش کند قال شروع می خب قبل از این که قال این قاله رو بگوییم نحو به چه معنی است؟ نحو در لغت به معنی به سمت مانند ذهبت نحو زاهدان مثلا رفتم به سمت و هم به معنی مانند. در کتاب‌ها زیاد می‌خونیم نحو فلان ماننده فلان اما در اصطلاح علما نح علمی است با قواعدی که به وسیله همون قواعد احکامات آخر کلمات عربی در حالت ترکیب شناخته می‌شوند از جهت اعراب و بنا پس در نه ما کارمون کجای کلمه هست بار موضوعش که خود مشخص هست کلمات عرب نتیجهش که انسان این علم فرا زبان از خطاهای لفظی در زبان عرب و برای یک شخص مسلمان فهمیدن بهتر قرآن کریم و حدیث فهم صحیح چون دیگه معانی حروف معانی افعال بحثشون کجاست؟ بعد از ابتدا شروع میکن قال؟ می فرماید الکلام هو اللفظ المركب المفید بالوضع یعنی این یک تعریف نحوی هست این یک تعریف جغ تعریف لغوی نیست چون در تعریف لغوی کلام به خط بنوشتن به اشاره هم برش اطلاق میشه ولی کلام نحوی همین تاریخی هست که آورد الکلامو هو اللفظ یک اولاً بچه باشه؟ لفظ باشه المرکبو دو مرکب باشه المفیدو سه چه باشه؟ مفید باشه بلوابعی چهار عرب اونو برای یک معنی وز کرده باشه عرب اونو برای یک معنای درست کرده باشه مثل محمد دلالت برچی میکنه بر اسم شخص نه یک کلمه از دهان منجوری بفرد و معنای براش درست پس الکلام هو اللفظ المرکب المفیدو بالوضع مانند چی؟ مانند محمد آمد این یک کلام هست اما محمد تنها کلام نیست آمد تنها کلام نیست پس العلم نافعون این یک کلام هست یا نیست؟ کلام هست کلام مفید هست کلام چه هست کلام مفید داریم. مرکب مفید هست ال نافعون یک چه هست کلام هست مرکب مفید هست اما اگر بگیم قلم سعید قلم سعید آیا قلم سعید این یک مرکب مفید هست نه. قال و یک مرکب مفید نیست فس فرمجست الکلام هو اللفظ و المرکب و اگر مثال بزنیم العلم نافع نافعون العلم به تنهایی چی میشه؟ میشه لفظ مفرد میشه چی؟ لفظ مفرد آورده بود کلام لفظ مرکب مفید هست بالوضع العلم و نافون. علم به تنهایی لفظ مفرد هست بعدن گفته بود اللفظ المرکب و المفید ما دو تا مرکب داریم چند تا مرکب داریم؟ مرکبیم ترکیب شده یعنی چه شده؟ اگر بگیم محمد قائمان این چه مفید؟ محمدی ساده است اما اگر دیم قلم و محمدین این چه مرکبه غیر مفید چون در کتابای دیگه چنین تعریف می زمانی که گوینده سخنش را تمام کند شنونده را فائده ای حاصل شود یا بتوان بران کلام سکوت کرد پایانش داد اونو میگن کلامه مفید اما اگر فردا بروی این مفید نیست مرکب هست چون لفظای مفرد چند تا داریم درش ولی مفید نیست اگر درس بخوانی مفید نیست اگر درس بخوانی قبول می شوی، این شد چه؟ پس گفته بود کلام لفظی باشد. المرکبو مرکب باشد المفید مفید باشد بالوضع اون هم قراردادی باشد عربونو برای معنی ساخته باشد واس کرده باشد انواع الکلام و اقسامه سلاحتون اقسامش چند تا هستن؟ منظور اون الفاظی که عرب در سخنانشان اونها رو استفاده میکنند یا به عبارتی دیگر اجزای که کلام از آنها تشکیل می شود چند تا هستند؟ ستا و اقسامه سلاثتون اقسام کلام یا اقسامی که کلام از آنها تشکیل می شود تا هستند یعنی بوقعی که انسان استقراک کرد در زبان عرب متوجه می شود که کلمات از این سهالت خارج نیست اسمون اسم و فعلون فعل و حرف جائل معنی و حرفی که برای معنای آمده باشد حرفی که معنا داشته باشد یعنی چی؟ یعنی هر حر حرفی جزء اقصان کلام نیست هر حرفی جزء اقسام کلام الحمدلله این لام جز اقسام کلامه چرا؟ چون جعله معنن برای معنی اومده برای چیم اومده؟ اما حروف هجا حروف چی؟ الف با تاسا این ها معنی دارن؟ ها؟ معنا ندارن پس اقسام سه تا می باشند یک اسم اسم است که به تنهایی دارای معنا باشد کتاب های دیگر تنین تعریف می کنند و همراه با زمان نباشد و فعلون و فعل است که به تنهایی دارای معنا باشد اما همراه با زمان باشد مانند زرب زرب دلالت چیز زمانی می کند گذشته و فعل بر سنو هست ماضی و مزارع و امر و حرفون جاهل معنی حرفی که برای معنای اومده باشد خب حرف در تعریفش چی میارن کتاب های نهوی؟ حرفان است که به تنهایی دارای معنا به عبارتی معنای مستقلی نداشته باشد فس اقسام کلمه نوع هستن اسم فعل حرف که کلام از این ستا چی می که؟ تشکیل می شود هر حرفی جزء اقسام تشکیل دهنده کلام نیست متوجه شدید؟ حرفون جا علمان حرفی که براش عرب معنایی وز کرده باشند معنایی داشته باشد موقعی میگیم الف با تا سا اینا هم حروف هستند اینا هم چه هستند اما معنی با چیست معنی نداره ولی با حرف جرم معنی داره خودش آمده گفته فالاسم و یعرفو تعریفش نکرده اون ای که اسم اسم با وسیلشو شناخته می شود رو نام برده است. یو عرفو بالخفضی اسم شناخته می شود با مجرور بودن. اگر حرف جر روی کلمه اومد بدانیم که اون کلمه چه اسم. حرف جر بر فعل آید. پس اسم یعرفو بالخفضی و تنوینی و دیگر چی؟ و دخول اللام والالف و داخل صدره و اللام مانند الرجل حالا که گفت اسم شناخته می شود با جر چون فعلها مجرور نمی فقط اسمها چ میشوند حالا میخواهد حروف جر را حروف خفض را چکار کند نام بدارد روف جر را نام ببرد علائم دیگری برای اسم در کتاب های دیگر می‌آورند که می‌گویند اسم آن است که بتوان در موردش خبر داد کتاب هداه و کتوب دیگر ندا یا صح پ اخبار و انحر صحیح باشد که در مورد اون چکار کنید و زینک هوا سرد هست، زید عالم هست، فلانی آزی هست که در موردش چکار کرد و به وسیله‌ش هم میشه خبر داد. چون زیدان قائمون، قائمون اسمه. به وسیله قائمون ما در مورد کی خبر دادیم؟ زید. زیدون قائمون پس اسم شناختی می‌شد با خاکز، با تنویز و داخل شدن الیف لام. وحروف الخفضي وهي حروف الخفض فمنجر إبارة أز من وإلا وعن وعلى وفي ورباء والباء والقاف واللام وحروف القسم وحرف هاي قسم كإبارة أز وهي الواو والله والباء مانند بله و تاو مانند تلا با این حرف ها عرب کار میکنن؟ سوگند یاد میکنن بخاطر این ها رو به حروف های سوگند ها جز حروف ها جرم هستن اگه شما قرآن باز کنید هر کجا که حرف ج قسم اومده کلمه بعدی مجرور هست و تینی و زیتونی و شمسی سوگند ها سی در قران وجود دارد اینها بودند از اسم علائمش اما فعل و الفعل يعرف بقاد فاعل شناختی می شود با چی وسیله قد قد ضرب قد فعل ها میاد و سینا فلند سیضرب سینا ما که رو فعل کلمه اومده بود رو چیه یاد روی فعل ها سأضرب سأذهب ستعلم وسوفا سورية تكاثور فورها سأل صوفا كلا صوفا تعلمون ويجب مداز فل بس فل شنو عقمشوهد باقاد والسيناء وسوفا وتائب تأنيس الساكنة و تایی تعنیسه ساکن مانند چی؟ مانند چی یاد؟ نصرت مانند نصرت خوب در اصل ساکن هستم ممکن جای کسر ای بگیرد مانند اغازول زلتل اربو ولی اینجا با بخ... کسر آرزی هست اصلش چی است؟ اما اینجا علامت فعل امرو نه آورده است در این علامت ها چون این کتاب مختصریست در واقع چی خیلی مختصر است. چند فقط چند برگه آچار هست این نقطه رو هم بگویم سینه و صوفه زمان که بر سر فعل مزاربی آیند فعل مزاره رو به معنی چی کار به معنی آینده به معنی آینده در میآورند. علامت فعل امرو که در کتوب دیگر میآورد. این هست که اولا دلالت برطلب بکند دومن یا مخاطبه یا نون تاکید را قبول بکند مانند انصر مانند چی؟ سر، خب انصر دلالت بر چی میکند؟ انصر دلالت بر طلب میکند یعنی یاری بکن انصر دلالت بر چی میکند؟ بر طلب و همکنین یا م.. آ... مخاطبو قبول میکند انصر انصرا انصرو انصری چرا اینو آورده به خاطر این که ما در اسم الفعل در چی؟ اسم الفعل میبینیم که به معنای فعل امر هست معنای صح یعنی خاموش شد ولی یای مخاطبو قبول نمیکنه ولی سه یای مخاطب و قبول نمیکنه؟ پس هر کلمه که به معنی بود امر نیست یک معنای طلب رو داشته باشد و دو یای مخاطب را بپذیرد اینا بودن از علامت های فعل خیلی جالب بحث می برای تلبه های و اما الحرف و الحرفو البته در مورد علامت های فعل هم بگوییم که می آورند فعل آن است که بتوان به وسیلهش خبر داد اما توان در مورد آن خبر داد ناصر زیدون یاری کرد زید خب ما به وسیله زید کردیم با سیره کار چکار کردیم؟ در مورد زید؟ خبر دادیم اما در مورد خود نصره بگی نمیشه چکار کرد؟ خبری داد و ما لا يصلح معه دلیل الاسم ولا دلیل الفعلی ساده ساده موقعی که تمام کلمات عرب تا هستن اسم و فعل و حرف علامت ها اسم گفتیم علامت ها فعل هم گفته شد پس می دونیم که اونی که علامت اسم و فعل رو نفذیلت چی میشه؟ حرف می شود و ما لا يصلح معه دلیل الاسم ولا دلیل الفعل حرف اونی هست که صلاحیت ندارد باید علامت اس اسم و علامت راه فعل راهنمای اسم و راهنمای فعل آنچه که دلالت بر اسم بودن می و دلالت بر فعل بودن می کند در اون نباشد بعدن در خود مثال های زیادی رو آورد حروف جر رو قبلا چیکار کرد؟ آورد اگر یاد مبارکتون باشد اعراب رو بخونیم الان یا کافیست